ای علی آبدینی، ای بچه محل سمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش هشت سال پیش بود یا شاید ده سال پیش بود که ای رو قیبت زد؟ نمیدونم واسه داره چی داره وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه اوکی. چی بستگی داره که کی میخواید چطوری ببینه؟ خب مثلا من چرا؟ آتو با این عقل که داری اصلا نمیتونی ببینی همه یه دنیا رو گشتی پیشون، نره سیدی بهشون. وقتی پیداد و برگشتی خونه مونست تنهایی بود و انتظار آخ که چه زجری تکشیدی کشیدی جان تو همون تنهایی بود که براهت رسیدی بلاوتسه به بودات و علی و حلاجت به حافظه داد چاه زدی حرف از کار زدی کار برای کار نه برای قایت و نهایت مثل همین گل زدن و آتیش روشن کردنها آتیش آتیش چه خوبه حالا تنگ قروبه چیزی به شب نمونده به سوزه تب نمونده به جستن و جستن و عوض نقره جستن اینجوری بود که جستی تو عوض نقره تو به خدا خدای خودو بزید عجب امنیت خوبیست. می میتوانی با او خود خودت باشی میتوانی دردهایت را هرچند ناچیز هرچند گران بی خجالت با او در میان بگذاری از هایت بگویی دوست انتخاب آزاد توست اختیار توست نامش را در شناسنامت نمی نویسند نامت را در شناسنامش نمی نویسند دوست عرف نیست عادت نیست معذوریت نیست دوست از هر نسبتی مبر است. دوست سایبان دلچسبیست تا خستگیت را با او به فراموشی بسپاری. سلام. من آرشم و اینجا رادیو هجده بنفشه. جایی که بنفشه و از غذا دوست مهربون هجده بودانشم است. دخیرکی که میلیونها میلیون تا دوست داره. دوستایی که همه جا هستن دوستایی که شاید اونو نشاسن ولی اون اونا رو خوب میشنسه آدما، ها, گربه ها، گلا، درختها سگا، دتا میزا صندلی ها،, ها, ها, ها, میز ها سندلیا, کتاب ها, ها پنجره ها و تموم مهربونی های عالم اصلا هم کاری با اونایی که از بچگی هی هم هو میکنن و مسخره میکنن نداره اصلا همه که نو شکل هم باشن دوستی هم یعنی قبول تمام تفا اینجا رادیو هجزی بنفشه و شما در حال گوش شدن به اپیزود پنجم از فصل دوم هستیم هستید. اپیزودی برای رفاقت‌های بنفشه ارقامونه. بلمو به بالا. بس دوست به یادگار دردی دارم. بس دوست به یادگار دردی دارم. بس دوست به یادگار دردی دارم. بس دوست به یادگار دردی دارم. من درد بسات خزاور درمان بسیار افتاد بیچاره دلم در غم بسیار افتاد بسیار فتاده بود اندر غمش بسیار فتاده بود اندر غمش اما نچه نیزار اما نچه که رفیق که داشته باشی دنیا رنگی نه برای اینکه تنها نباشی نه برای اینکه بشین و باش درد و دل کنی و نه حتی برای اینکه دلت نگیره برای اینکه رفیقه رفیق که داشته باشی دلت قرص میشه. نه برای اینکه کسی حمایتت کنه نه برای اینکه پشت و پناهت باشه نه برای اینکه رفیقه رفیق که داشته باشی دنیای امن و مهربون و رنگی داری دقیقا فقط به خود رفاقت. اصلا خود رفاقت کل چیزای خوبیه که گفتن نمیشه تعریفش کرد اگر بخوای تعریفش کنی میشه یک کتاب خدا میلیون صفحهی در چند هزار مجلد اصلا چه کاریه همین که بگی رفیق خودش ما تعریف میشه اصلا یکی از تنها چیزاییه که نیازی به تعریف نداره رفیق یعنی رفیق رفیق یعنی اوج تفاوتهایی که قبول میشن و دوست داشتنی رفاقت ها بوی صبر میدن و صدای گنجشگک های درخت چنار بوی نونسنگک میدن و اطر آقاجان رفاقت بوی رفاقت میدن دو تا تعمیرکار کوچه پشتی، دو تا تعمیر ماشین درست چسبیده به هم. یکیشون ابرام آقا دسته. اون یکی محمود اگزوزی. ابرام آقا دست یه مرد پنج خورده ای ساله است، با سیبیلای نچندان پرپشت که خیلی هم بهشون افتخار میکنه. محمود اگزوزی تقریبا هم سالای ابرام آقاست. حیکل تکیده ای داره و تخصصش هم اگزوزه. ابرام آقا و محمود دو تا دشمنن. من البته اینو دیگران میگم. اون روزی که منتظر اتوبوس وایساده بودم، دیدم که ابرام آقا توی یک لیوان چرک مرد که جای انگشتای گیریسیش روش مونده بود، از همون لیوانایی که طرح کندو روش داشت و شیشه اصل بوده، یه چایی ریخته و با دو تا قند از گوشه در بزرگ گاراژ کوچیک محمود داد تو و محمودم چایی رو گرفت و یه نفس سر کشید. و دو تا قند رو هم خالی خالی و خرج خرج جوید و توی بشقابی که لیوان بود یه سیب نصفه زرد رو از پلاستیک در ورد و گذاشت و داد به ابرام آقا. اونم یه کله اونو کلف زد و به یه گاز کلکش رو کند متاسفانه اتوبوس اومد و من باقیش رو ندیدم اصلا مگه میشه دو نفر که با هم قهرن با این خلوص به هم محبت کنن؟ قشنگ معلوم بود که محمود ایزوزی اون نصف سیب رو برای ابرام آقا کنار گذاشته. ولی بازم سوالی که پیش میاد اینه که چرا با هم حرف نمیزنن؟ یاد اون دیالوگ اساسی سریال خانه سبز افتادم. همون که همیشه ها مثلا خسرو شکیبایی به مهران مهینتورابی میگفت قهریم ولی حرف که میزنیم. و مهران مهینتورابی هم در جوابش میگفت بله قهریم ولی حرف میزنیم. اونا به هم قول داده بودن که همیشه ها و در هر شرایطی حتی در اوج قهرم با هم حرف بزنن. حرف زدن خیلی مهمه. میدونم که ابرام آقا قدیم یه کامیون داشته. اینا رو از قراغا میوه فروشه محلمون به هم گفت. ها که ابراماقا تو جاده یزد کامیونش چپ میکنه با همین محمود اگزوزی شریکانه میان این دوکون رو میخرن. یادم رفت بگم. دو تا دوکون اینا در اصل یه دوکونه بزرگ بوده که بعد با یه تیغه ناز و نصفش کردن اسازنده قامت مو با با کم نمی شکه يرد نره اون یکی می دلش از هر پور تره تا دنیا با هر خوبه با هر با کار رفیق خوشبختی باو به ساده شکستان البته بگذاریم از غرقا می گفت سر رفاقت بوده سر اینکه که یه بار محمود اگزوزی به پول نیاز داشته و به ابرام آقا نگفته و اینا هم با هم اینطوری سپنجی شدن و این در حال که ابرام آقا و محمود اصلا شبیه هم نیستن شاید باورتون نشه ولی محمود خیلی مرتب و منظمه حتی یه ذره روغن و گریس و کثیفی توی دکونش نیست ولی برعکس ابرام آقا چال چاله وسط دکونش از بس از روغن سیاه شده تاش معلوم نیست همه میگن چون این دوتا این همه با هم فرق دارن با هم قهرن مثلا یکی میگفت واسه خاطر کثیفی بیش از حد ابرام آقا و تمیزی و واسواس بیش از حد محمود که اینقدر با هم بد شدن ولی اسقرا گفت سر رفاقت بوده راست میگفت اون روز بعد از ظهری که منتظر اتوبوس بودم دیدم که چقدر با هم رفیقن. دو دوتا رفیق که با هم حرف نمیزنن ولی بد جوری هوای هم رو دارن دوتا رفیق دشمن البته از نظر من همه سر کارین و این دوتا رفیقتر از همه رفقای دنیا رفاقت یعنی در اوج وسواس توی لیوان گریسی و کسیف چایی که دوستت در و سر بکشی و کنداشو خرج خرج بجای. باشه دیوونه چیم تا دل داریس جای دیوونه هواج ابراز دیوونه میخنده <متصفيق> چشماش میپنده <متصفيق> تا اینکه یه روز این دنیا یه دل ده بخنده بخنده بخنده دنیا, یه دندگی میکنه و یه زندگی میکنه و دنیا یا یتن دیگه و یا دل یا ورسم دیگه رو شکن دنیا رژدا برو چلو نهلالم نهلالم نهلبجام این گانون دنیاست پس گانون رشتنس رفیق چرا دلت بره اس دنیا دلخوره یه یه هنوز نمیده داره گله چمی بره منم با بدون بارون میاد بارم رو می داره هر چی نموده سرو خرج یه روزی می هرفاقتای الکی مس اتکلونای بونجل فیک از این که طرح شیشه و حتی بوی اولشون شبیه اوریژینالشون و بعد چند دقیقه بوی خوبشون میپره و یه بوی مشمعز کننده سردردابر میمونه بس. اینجور رفاقت مثل اسید میمونه. میریزه توی رگ و پی و پوست روح آدمی زاد. همه چیزو از بین میبره، اعتماد و سرطانی میکنه و دلو کفک زده اینطور رفاقت ها رو هم نمیشه تعریف کرد. اگه بخوایم تعریفشون کنیم کل دنیا رو آفت بدبوشون پر میکنه و نمیدونم چی میشه برای همینه که بعد هی با ایما و اشاره مثال و مستاق شد اینطور رفاقت ها مثل لید و کاین میمونن اول میسوزونن بعد بی میکنن دل و روح و روان و حتی جسم اخرای کتاب برادران کارمازوف یه ای داره که میگه جهنم چیست به نظر من رنج ناتوانی از دوست داشتن است آره این رفاقت های علکی پلکی قوه و سنسور دوست داشتن رو از آدم میگیره، از آدم می دوسته. اینجور رفاقت ها دزدند جهنم امروز فهمیدم چرا آدما به جنگ میرن با اینکه میدونن چقدر خطرناکه امروز فهمیدم چرا آدما به جنگ میرن آدما به خاطر رفاقتاشون به جنگ میرن رفیقهایی که تو جنگ براشون مهم نیست یکیشون کفش و پوست سوسمار میپوشه و یکی دیگهشون دمپایی پاره ی وصله دار برخلاف دیدگاه هم که فکر میکردم آدما ها به خاطر ایدئولوژی هاشون یا برای ارزای حس افتخار به جنگ میرن، امروز فهمیدم به خاطر رفاقت هاشون به جنگ میرن. اینا برای همینه که پرچم رو دوست دارن و چفیه هاشون رو هنوز بو کنن. این آدما هر چیزی رو که اونا رو یاد رفاقت هاشون بندازه، بی و در هر شرایطی دوست دارن. مثل بوسه ترین بوسه های شیرین هر آدمیه. آدم ها ممکنه بارها و بارها در طول عمرشون آدمای زیادی رو ماچ ولی یه بوسه بهترینه. شاید بارها و بارها باز همون آدمها رو ببوسن ولی اون بوسه تکه لباسی رو که پوشیده بودن. روزی که اون بوسه رو کردن منحصر به فرده. اون آهنگ و یا اون مکان. همه شیرین. ایان ماجراست است شلیک کن رفیق تا کجا کجاست شلیک کن رفیق دستور می‌دهم آتش از من آلی جناب خو شلیک کن رفیق اجرای حکم مرگ اسمش که قتل نیست این جمله آشناس شلیک کن رفیق به به که او فرمان آتش است در معرفت شلیک کن رفیق مرگ موقعتی در مد نشست کرد اندیش در شلیک کن رفیق متن وسیعتم شرح مصیبتم بیروزه کربلاست شلیک کن رفیق یک روز سر به مور ما گفتم ما قلبی که جا به جاست شلیک کن رفیق قلبم نحیف دار ها و ها مثل اهنار. انار انار کلا خوبه ولی همه دونه‌ها که یاغوطی و قرمز و شهلا و جنگیل بالا نیستن بعضی هم کوچیک و سفید و ترش موندن مثل لحظاتی تو ها که باید به کلیت شیرین و آبدار و قرمز نگاه کنی و اون یه دونه رو قورت بدی و فراموشش کنی و حتی نجایش مثل یه آجر از یه دیوار بزرگ آدم که به خاطر یه آجر نمیزنه کل دیوار رو با خاکی یکسان کنه رفاقت‌ها رو هم باید قد اصلا رفاقت ها قددانی نشده ترین موجودات عالم هم. خدا باید کم کم به فکر یه مراسم باشکوه لاکچری باشه با نورپردازی عالی و شیرینی و شام و شربت برای قددانی از مقام رفاقت. تهشم رفاقت خدا بشینن جلوی تلویزیون و با هم تخمه ژاپنی بشکنن و از خاطرات دوران جوونیشون بگید. البت خودم میدونم که خدا و رفاقت پیر نمیشه. چقدر خوب است که ما هم یاد گرفته ایم، گاه برای ناآشناترین اهل هر کجا حتی خواب نور و سلام و بوسه می بینیم. گاه به یک جاهایی می رویم، یک دره دوری از پسین و ستاره، از آواز نور و سایه روشن ریگو، و می نشینیم لب آب. لب آب را می بوسیم، ریحان می چینیم، ترانه میخوانیم خانیم و بی به فهم فاصله، دهان به دهان دورترین رؤیاها بوی خوش روشنایی روز را می شنویم. باید حرف بزنیم، گفتگو کنیم، زندگی را دوست بداریم. و بی ترس و انتظار اندکی عاشقی کنیم. اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما اپیزود گرم تابستونی بنفشی رو شنیدید که باید دستش را گرفت و رفت زیر درخت های ولی و کوچه باقای کاشون و شیراز باهاش را رفت، آلوچه خورد، خندید و شاد بود رادیویی که بنفشه و هجده و از غذا دوست تمام مهربونیای های است. هست این اپیزود تقدیم میشه به تمام رفاقت که قرار روزی از اونا تقدیر بشه تموم رفاقتهایی که قرار نیست تموم بشه یا قرار هیچ وقت تموم نشه یادمون باشه که یه روز میرسه که تو دوری و رفیقا هم دورن اون سر دنیا لابلای همه اون آدمایی که حتی زبون تو نمیفهمن تو مدارای بالای کره زمین تو یه روزی که به خاطر جبر جغرافیایی قرار نیست شب بشه و فقط یه گرگومیش از اون وسط و درست وسط اون گرگومیش بعد از مسکرات و دود سیگار فقط یه رفیق میتونه دوای دردت باشه من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب محیمنا به رفیقان خود رسان بازم خدای را مددی ای رفیق ره تا من به کویه میکده دیگر علم برافرازم رازم تمام